رسول الله و آله طیبین و فاهرین و محصومین و و اللهم و فرما و رحمت که حالا تو مسئله حبد صاحب دوتا روایت اساسی داریم که یکی از سکونی سکی جم در سنه سر نکندو دیگه مجرور شدیم وارد یه این دو نفر بشین که به اصطلاح هر دو بخصیفت همز آمه هستن دا که رواست شما قابل حبوب البته من ارز کردم بحثایی ما چند نیزار که مفتیه چند اصول بیشه رو تو دارم بشون باز هم رجالی صرف نیستم رجالی صرف با جای دیگه میخواد هر حال ما به این مناسبت ارز متعرض کلمات میشیم چون خیلی هم اصطور دارم چه کلمات دقیقا در رسی بشه. این عبارات رو میخونی از کردیم دیروز این دو سه گذشته بودشته ابتداعاً عبارت مرموم هایز کویه رو خوندیم به اینها ایشون غالب رساقت سکونی هستن بعد عبارت مرموم توستری در پاونس رجال خوندیم ایشون منکر رساقتن ایشون باز برگشتن بودن امروز عبارت دو سه روز بیوز امروز عبارت مرموم نوری در مستدرک از کنه معموم در خاطر مستدرک ادهی از فوائزی رو که مقام در هرد و سایل توضیح بدن من جمله اون فائده ای که طرق شیخ تدو و طرق شیخ توضی اینها ایشون شرعه محسنی و انصافا هم این شرح محسنی فقید یکی از مباحث بسیار بسیار مفید کتاب مستدرک انصافن این فائده چهارم ایشانه یا فائده خامسه فائده خامسه فائده پنجام و ایشان ایشون دوازده فائده مثل وسائل اما به ترتیبش نیست با اون فرم در شرح مشیخی مرمون صدوق در خریه که خیلی فوائد علمی رجالی تاریخی و حدیثی بسیار مفیدی تا دیگه شد بزوان الله تعالی بعد ایشون شواهدی رو اقامه کردم شاهده پنجوم یا به طبیه خودشون یه نروشن همجره باز خوصی بهتون قرار محققی در معتبر در باب نقاس بعد روایتی رو رو و از فکون نرزی محقق ماله بزور و از عامی آمی لاکه نبوسته اتوان ما توضیحات با ارز کردیم دیروز دیگه تکاریم رو خواهد بکنم تصریح به وساقت فکونی تا قبل از مرغوم محقق ما نداریم به فکر میکنیم ما عبارتی رو شیخ در اذه داره که ایشون نرد کردن، درس هم نرد کردن، تصریح نداره، صدوق داره، شیخ داره و بعد از این دو بزرگوار عبارتی که رازی سکونی داریم ابن ادریس علیه این عبارت ابن الان بعد عبارتی ابن ادریس الان می خونیم برای عبارته، لكن اولین کسی که تصریح میکنه و میگه سخونی خام نیست، بلکه نوصحتها موحکقه، قدس الله سره. در هفتم و توضیح ها داشته هم عرض کردیم که محبوب محقق این مطلب را از عده شیخ نحل کرده حبارت محقق نحل کردیم بیشت خوندیم که امروز هم توی بحث وسائل خونیم توی بحث اول ایشون اینطوره که انل امامیه و قال شیخن عبو جعفر فیلمواز من کتبه انل امامیه مجمعتان اراد عمل به ما رواه از سکونی و همارو من ما صلاحاما من استقال ایشون دارد من کتبه. این عبارت در هیچ کتب شیخ نیست. این عبارت دیگه مرحوم محقق نعم کرده. در هیچ یک از کتب شیخ الان موجود نیست. لذا به ذهن ما میاد که ایشون برداشت کرده. البته اثر کردم مثل صاحب وسائل علم صرف مرحوم حاجی نوری اینها چون معتقد به تعبودن یک یعنی چون محقق نعم کرده قبول نکرد. <تصح> <تصح> نیست الا این عبارت ان الامامیه علل عمل به ما روا و و اما ما ماصله و ما من استغار در هیچ کدوم از کتاب شیخ وارد نیست عبارات عارف محقق در حاکیشون که ادبه اخلاص میذاره اختلاف از چیز دیگه‌ایه نیست این عبارت بلکه بهترین توجیه به نظر ما این است که بگیم محقق استیاد کرده این معنا رو یعنی این معنا رو استنباط کرده استنباط محقق از مجموعه کلام و شیخ طوسی به از من و از کلیم اولین بار که در شیعه رسما توصیق به نجاشی نصف دادشت همین قرنه هسته سقتون الا انهو سقتون از زمان محق حالا ما عبارت شیخ توصیق نوارش خوندی عبارت صدوق رو چند بار تکرار که تو میراث مجویسی در فقیح داره ولا افتی به ما یه یعنی نفر دارو بیهن سکونی تعبیرشی اگر سکونی انفراد داشت فتوان نمیدن حالا این عباره هم اینشالا با شمع بدیم که بعد ابن ادریس در سراعیت این مسئله میراس مجلسی چون شیخ هم تو میراث مجلسی را در سکونی و در صدو در اونجا بعد ما بعد تصمیم جوازه عمل و اخبارال آهاش نبون ادریس به خبروهاد عمل نمیکنه. تعبیر ابن ادریس در سراعیت اسماعیل بن عویزیاد سکونی به سین یکی از لطائف حالا من چون آشنایی به پیدا بکنید یکی از لطائف کتاب سرایل ایدریس این نکات فنی هم داره مثلا یه لغتی کلب سلوخی مثلا به فرط سیم و لام و زم ل... لام و نسبت رو خلا یه از تحقیقات لفظی تحقیقات تعبیری داره این کتاب سرایل ایدریس مثلا این جو چیدی رو مثلا نهای شیخ یا مثلا کتاب شهر مفید نمیدید همون مردم ایدریس داره ایش رو داشته سکونی به فرد سین منصوب اون الا قبیلت هم بینه عرب الیمن ناستم از درسته منصوب به یمن و هوه احامی المرحب به غیر خلاف از سه تا زمان ایشان الا بعدها خوندیم از دیگه گفتت نایشون سومی نبوده مختلف چون نجاشی نبودیشون آمی و اشترال احساسیشون این بود خوندیم بلا اگر واضحات بود بعد منکر آمیه دیشون کردی. نه سکون نیست مثلا؟ البته خاص سکون که آرامشه، مرا سکونی دل که و شیخ خونا ابو جعفر موافقن علی ذلک. زاهر ذلک یعنی عامی بودنه میشد. قائلن به وتره فی فهرست اسماء المصنفین و لهو کتابو این در مورد شیخ و تعجب که اسم مرقوم نجاشی را نوشتن، نجاشی مشن ما عبارت نجاشی و شیخ و هر دو رو خوندیم و اختلاف این دو سال رو هر دو گفتیم، هم اصلاح شد. و له کتاب و حد و فل اصول. همین بحث امروز هم عرض کردیم. کتاب تطبیق جزء اصول اولی که سمی گفتم ابن ادریسی. ما شیخ کتاب جزء اصول ورد نه نجاشی شروعش اصول نه. اگر ضمن وقت رساله بخونید این توضیح هر کردید ایشون کتاب جزو اصول حساب کرده و نظام عسریه که واقعا ما هم نمی‌دونیم مثلا معیار عسر چی بوده چطور میشه ابن مثلا ابن بیست که خیلی هم حدیثشناس نیست ایشون در شناخت کتاب حدیث خیلی ضعیفه کتاب رو ایشون بدون اصول حساب کرده خب مرحوم شیخی میگه روابطش باید مخالف اصحاب نباشه کد نجاشی مرحوم صلو میگه لارعن گفتیم مؤنثر دو به دیگه من کلمه یال پر دو به رو می توضیح بدن الان من توضیح خواهم بدم لكن اصولا بدونید به طور کلی خبر واحد رو جای بشه اما که کنه اعتراف باشه والله خبر واحد نیست اصلا معنای خبر واحد یه اعترافه یعنی عادتا وقتی میگیم خبر واحد حجه یعنی این راوی یک مطلبی نقل کرده کسی دیگه نقل معنای هم این معنای خبر واحد. یعنی جایی که شخص منطبق باشه و الا اگه شواهد باشه که بحث وجود خبر می و لذا از این عبارت لا افسی به ما یعنی سای دوبه قد یست از هر مراد اینه که ایشون سقه نیست چون اگه بنابرای شما خبر لقصی فهمه خبر سقه کجا قبولو کن جایی که انفراد باشه جایی که انفراد نباشه که بحث وجود خبر واحد نمیاد کسره خبر واحد متواثره و مستفیذ و معشواهد خبر واحد این خبر واحد مجرد از خبره یعنی ماینتر ينفردوبه یعنی طریق ما فقط این آقا باشه اگر بنا اگر فقط اون آقا بود عمل نکرد خبر واحد حجت نیست یا باید بگیم خبر واحد حجت نیست یا باید بگیم آقا چه بنیم یعنی این دو حرفو باز بزنید لا افتی به ما ينفردوبه از این عبارت دقیق کردیم چون علاوه از این عبارت میخام در این حال وثاقت هم در بیارم اول این عبارت با اباضی شیخ طوسی دو تا یا یکیه این یک بحث یه بحث دیگه اینکه از خود این عبارت وثاقت در بیاد یا عدم وثاقت لا افتیم واین فردو به این ظاهرش اینه که یا خبر واحد حجت نمیدونه یا اینو ثقه نمیدونه یکی بودی مشکل در اینجا باشه دیو به هر حال لفت چطور مرحوم ابن الویس میگه در اون کتابون یا عدو پر اصول این چیجور دو دو اصوله تعمل شد این چیجور این کتاب دو دو که اگر در یک مسئله بخنهایی باشون حجت هم نیه ستاده با مگه لا آسیبه و انس کاری اینشانا من توضیحاتی بیشتر از اون من خیلی به جمهاری انس کردیم توضیحات مفصلی بعد از کام بعد مرحوم ابن اندی به میفرم من خودم یک نسخه از کتاب سکونی رو استنساخ کردم نوشتم کتاب تو من خط ابن اشناص برزاد این من منظورش صادقاً نگونه این عبادش می این اینو از کتاب ابن اشناص برزاد نقل می درست شد وقت قرئه علی شیخنا ابی جعفر این نسخه بر مرجوم شیخ طوسی اراعت شده و علیه خطه اجازتا و سماعا هم اجازه داده و هم سما لولدی یعنی به عبارت دیگر اجازه داده به پسرش ابو علی خصیح ایشان حسن بن محمد ابو علی معروف به مفید ثانی لولدی ابی علی و لجماعت رجال غیری یا غیره بود غیره و فریده ولجماعت رجال غیری خیره بود خیره بود. به گروه من سابقاً کردم احتمالاً این اجازه شیخ ایشون داره اجازه و سماعاً احتمالاً قراءتن بود باشه حالا اگر قراءتن بود یعنی پسر بر خونده برای محمود شریری طوسی سماعاً به اصطلاح شاید گفته من سمعت او در علی ولدی بیهنه سمعت او اگر سماعاً باشه شیخ خونده بچه بچو دیگران شینن اجازه ده این مطلبی است که مرحوم ادن ادریس در توصیف این نسخه آورده و متاسفانه ابهامی در اینجا ابحام وجود داره یک ابهامی در اینجا وجود داره این است که ایشون توضیح نده این نسخه را از کجا گرفته کی گفته این نسخه حتی ادن اشناسه و کی گفته که این اجازه شهر توصیه؟ حدود ست سال مابیدشون تفاوته و ظاهرن از این عبارات مروه ابن ذبی سنوسی ایشون به نحله وجاده اعتماد می‌کرده فقط ناجی کتاب کتابو ابن عشاش ایشون ابن عشاش حسن ابن محمد به اسماعیل بن عمران عشناس بزاز از رواط شیعه در بغداد و 22 سال قبل از شیخ فوت کرده و مرحوم حاجی نوری در جلد قبل از این خاتمه کمی دسته جلد 22 در جلد 21 یه ترجمه از ایشون آورده برونو استاد شیخ طوسی. ننوشته کجا شیخ از ایشون حدیث کرده من پیدا نکردم. فعلا پیدا نکردم. نه بگردم. احتکامش تو عماری باشد و اینم از عجایب کاره که مثل ابن عشناس از بزرگان شیعه تقریباً از بزرگان به یک شده در بغداد باشه و نه نجاشی اسم ایشون آورده نه شیخ. خیلی عجیبه. و وفاتش اینطور که طبیب بغداد یعنی ما معلومات ما مهمه ما از این ابن اشناس ترصد خطیبه که سنی ظاهرا شفیعی رشته بیزنسش میگه و کان سماعو صحیح است مردی است که تحمل حدیث درست حدیثی تحمل کرده لکن میگه و کان رافضی هم خلیسان خیلی شیعه خلیسی بود چون میگه در منزلش در بغداد اصحاب شیعه جمع میشدن وراشو مساله و مسائل سحاوره میگفت کان یغ علیه مسائل با نخی ایشون وحادی 439 نوشته اگر این تاریخی چون میگم ما اشیعه که نداریم سه سال بعد از سید مرتضاست نجاشی خیلی مفصل حال سید مرتضا داره خیلی عجیب از مثل نجاشی حال این شخص نداره شیخ هم نداره خیلی عجیب خیلی تحجیباوره واقعا برای ما انصافا خیلی تحجیباوره که شرحال علمای شیعه باشه و این دو بزرگواری که معاصر ایشون بوده، گفتش رو استادش شیخم هست، حالا من اون استادش رو ندیدم که این استاد بده، مرحوم حاجی و ابوذر هم نروکده که یار یه انم شعر. لكن الان نمی‌دونم چون موارد نثافتش معین نگرد. ابوذر تو عملی بوده، اگه باشه تو فرمانی. علاوه کیف ماکان ابن خشناس توصیف هم شده، تقدیر شده از این عبارات خود خطیب و معلومه مرد مولایی بوده و کان سما و صحیح هم الا الا کان رافضی هم خبیثه. از این اوازش من که یک شخصیتی در بغداد بوده این ابن اوشناس اگر اصطال شیخ باشه مثلا یه نسخه از کتاب سکونی به خط خودش نوشته این نسخه رو به شیخ داده به شاگردش داده نمیدونیم حالا مشکل کار خیلی ابهام داره و این زمان یعنی وفات ایشان که 1639 ده سال قبل از حجات شیخ بنجفه شیخ ساست 49 بنجف حجات کرده این ده سال قبل از احجاز شیخ نجر بفات ایشان دقت میکنیم، هیچ شبازه دی الان ما در دست نداریم که مرموم شیخ توصی، در کتاب تقدیر سال، مستقیم از کتاب سکونی نرمی کنید خیلی عجیبه این خیلی عجیبه اگر کتاب مستقیم در اختیارشون بوده شیخ رو زیاد نرمی کنه از سکونی اما از کتاب کافی از کتاب و از محمد علی محبوب صدرالدین عبدالله دیگران کتاب نماز از کتاب های دیگه از کتاب‌های دیگه اثرو می‌درغم میکنه خیلی عجیبه که نسخه ای به خط ابن اشناس پیش ایشان بوده نمی‌فهمم الان خیلی ابهام داره صحت این نسخه رو شما ما خیلی ابن الریسی و خیلی حدیثشناس نمی‌دونیم صحت این مطالبی که ابن الریسی گفته روشن رو نیست و بعدشم ایشون نذاشت این نسخه از کجا گرفته و بعد که مثلا شیخ به جماعتی اجازه داده حتی کنی کسر به کس دیگه اجازه داده باز اون یکی به کس دیگه اجازه تا به ابن ادری فرسیده من احتمالی که سابقا تو این بحث ها گفتن احتمالا نجف باشه بقید بخداد باشه احتمالا مدت زمانی که در نجف بوده نسخه ابن اوشناس پیش ایشون این نسخه اجازه داده و قائله علمیش اختصار کرد که مرحوم ابن عزیز صورت اجازه شیخ را نعرو بکند که اصولاً چه ببینید مرحوم شیخ توسی که اجازه ای به کتاب تکونی داشته به هر حال معلومات ما فعلا از ابن خیلی کمه خیلی عجیبه واقعا من فقط به خاطر این را که ما گاه گاهی در بعضی از بزرگان ما که جزو مثلا صی هایتون دی هستند و راافی همینی تر هستند. معلومات ما چند سنییا به ما معلوات میدنیم هم خیلیجیی ب و بگرین به معلومات سنییا ها اسمین رو ما نداریم هر اگر آن باشه مثلا در اینکه دو مورد در کتاب فصل می که کهشهل در عمالی اسمش بردده. بله ادیس بعد از دمای هلله اسمیشون رو بردن ابن آشناس بعداز رو که برداری برده شده به همین مقدار کلان خوه. اولین کسی که تقریبا من دیدم حالا معلومات من کامل نیست از شیعه که از یک کتابشون نقل کرده ابن تابوسه تو اقبال به یک مناسبت از میگه اینا از کتاب عمل زیهجه به خط خود ابن اشناس نسخه خط خودش در سال 437 دو سال قبل از وفاتش نوشته این کتاب رو اسم ارمانی کتاب عمل زیهجه مستحبات ما از زیهجه جمعه های که سیم تاووس در اونجا عورده. من واژه بحثی میخوام خوام بشن فرض اشاراتی ایشون اولین کسیه که این اسم رو برده یعنی کتبی رو ازش نهار کرده که از او داره یه چند حدیثی رو از اونجا نقل میکنه اون اهالی صدا خوبی نداره خیلی داد و داغون من نمیفهمم سما ایشون بوده چیه میگم من میخوام واژه بحث اصل جالبیشون چون اینجاش اینجا نیست بعد از ایشان باز ما کسی که اسم ایشونو برده صاحب وثائل در عمل ال عاملی شیخ حر عاملی از طرح عمل العامل دو جلی یک جلیش در شرح علمای جغل عامل لبنانی ها جل دومش در شرح حال علما مطرمه اسمش هم تذکرت المتبهرین هست جل دومش ابن عشناس تو اونجا آمده اسمش هم اشتباه آمده الان. نمی کنیم چرا سال و سال و, سال. و نمی کنیم از خجام گرفته سال و سال کتاب های دیادی بیشان نسبت میده چند کتاب بیشان نسبت میده دیگه از اون زمان یه عاش در توی طبقات اعلامی اداره مال قرن پنجمه میشه یا علماء قرن خامس در نابس داره شرح حال در اونجا داره منو آیه حاجی نوری داره آقای خویی داره در معجم در همین انابینی که ذکر شد علایها له هم این اشتباهی داره چون اشتباه صاحبسال آقای خویی منتفذ نشدند هم عبارت صاحبسال اسمشون ده حسن بن علی اسمش حسن نه محمده آقای خویی هم علی ورز هم تو حسن محمد تذکر که این اشتباه کرد سالگرد ما حسین اقوفه غلطون است. حسین هم حسینو محمده. اگر او خواست نسخه زدالش من چهار نسخه زد و یه پنج مجموعه خیلی کسیف بکنه. یکی حسین نهرویم نه 8شیم ماورده اسال وسایلی نه اشتباه. این اسمی بعد از تو حسینو محمد اسمشون آورده. اون درسته حسینو محمد این اسم اون درست. الله ای ما ابحام های زیادی اینجا داریم چون ابن عدیسی متساهل در و رحمه الله رزان الله تعالی علیه، الان نمیتونیم صحت و صغم این کلمات ایشان رو خیلی ما درک بکنیم از کردم با جلالت شخص منافض نداریم اینا اصطلاحات حدیثی باید این نکاس رو ایشون مراعات میکرد کسانی که این رو خواست نکنن ممکنه کاملا بزرگ واب جلوغت، عظیم و شن، فقیب متدین، ظاهر، برای همه جهاز باشن معذار یکی متصار رو پر حدیث این تصال در حدیث رفت توی مقاماتی دیگه نداری نقطه بعدی که ایشان در بله منها و واب بعد بعدیش امن کتابهو بله انتها کلام و فی فرا از کلام ابن عزیزیشون توائد دارن یکی این که کتابهو اصول. تا یکونه مؤتمره که این جوابش بوده چیزی من نمی من ها منها انها دل از کان موجودم تی طبقت شیخ و من قبله شایم متداولم خیلی عجیبه واقعا من تحجیب از مساجی نیم با میگه حق ابن عشناس بوده اجازه شیخ در این شایع و متداول و کتاب معروف و به بله یسمعونه من و منشیوخ و یقرعونه و علیه هم الاخری این استظهاریشون هم خیلی روش این هم به این مطلب ایشان از سر را یه همه مساله مطلب دیگه روایت اجلاعن این که خب در عدیه از کتب آمده که بزرگان از سکنی نمیده جمع آن من اصحاب اجماع این همینشون اکدن دیروز در بحث وسائل هم متعرض شدیم. وجود اصحاب اجماع وقتی به عالم روایت نظرون مربوط به ثقاحتون هاست توضیحاتش بودششونه یکی ای مغیره، داسته عبدالله نموغیره تقریبا میتونیم بگیم کسی که در درجه اصحاب اجماع باشه و نجاشی هم در حقش توسیق رو مرته این گفته سقطان سقطه عبدالله نموغیره و نسبتا زیاد حدیث داره از سکنیم این قبول این جای بحث نیست فقط نکته که نخواستم این امروز اضافه کنیم که تو تا حال جوری دیگه میگفتیم عوض شده ما همیشه کتاب السکونی دو نسخه معروف داره که نسخه نوفری یک نسخه عبدالله نمغیره چون عبدالله نمغیره زیاد حدیث ها میکنه ما کتابت حدیث و علامت نسخه میگرفتیم لكن اخیرا باز مراجعه کردن دو مرتبه دقت بیشتر روشن نشد در ما که عبدالله نمغی راوی نسخه باشه این روشن نشد از, از کتاب السکونی نقد میکنه کتاب نرم میکنه اما اینکه این تعبیر من نسخه بوده بنامه. نسخه واضح نیست. به نام نسخه عبد الله بن مغیره واضحه نیست بکنم به این معنا که احتمالاً اون مقداری که بران از عبد الله بن مغیره در کتاب‌هاش نقل کرده خوب دقت بکنید دار عبد الله بن مغیره کرده اما مثلا در خارج نسخه بودیم. این نسخه عبدالله الله این واضح نیست نسخهی قطعا واضحه نسخهی هیچ شکی درش نیست نسخه معروف کتاب السکن نسخه مغفیره این در شوبه نیست این تقدیس میشه. نسخه چون تفاوتشون خیلی زیاده. شده 75 درصد تا 80 درصد واسه سکونی، آقا اسماعیلی. عبدالل موقیر هم میزنن 10 درصد شده، نگارترشون 10 درصدان چند تا 8 درصد. نسازش خیلی خوبینه. همیشه من هم میگفتم نسازش خیلی خوبینه. اما تا حالا تصور من این بود که این نسخه باشه. الان که بیشتر نگاه کردم و دقت بیشتر تو اسامی کردم، به ذهنم اومد که نسخه نباشه. توی کتاب‌هاش اسم داره. اما نه این که مثلا در کوفه نسخه ای بوده به نام نسخه عبدالله بن نسخه در اون زمان به منزله چاپ تو زمان ما نسخه صدمن چاپ نوپری چاپ نسخه ای باشه از خود کتاب عبدالله از سکونی بوده قبل ما ما بین این دوتا رو فرق میگذاریم این یکی از اون نکات مهمی است که ما در بحث تحریر فهرستی داریم علمای رکالی مثل حاجی نوری مثل الخوی دیگرا اینا فرقی بین نسخه روایت روایت نمیذشه <تصفيق> میگن عجله ازش بوده که در کوثرن میونه ما این فرق گذاشیم گفتید بعضی وقتا این راوی نسخه است. از این کتاب رو درک گاهی وقت ممکن است این راوی از اینها مثلا همش کلا 3 تا 4 تا باشه 5 تا 10 تا 20 تا تو کتاب عوضش انارته نسخه نابوده خب این ارزش رو پایین. یعنی اگر نسخه باشه ارزشش می‌ذاره بالا اگر نسخه نباشه مجرد پس تو از ۱۵ را سکوی بی تاش ن کرده. خب این خیلی اعتم میتون درستکنه به کتاب کتاب رو بالا نمی اما اگر کل کتاب نار کرده باشه حال اندث بدال مغیره که جزء اصحاب اجمال اجماع و هم به اب خییر مض و هم به قول سه قسم سره و هم کل مای ثحبیلی من چی و خیلی ما دیگه در اداد عبدالله نمغیره کسی نداریم با این جلالتشن از سکونی نهار کرده باشه آلا من چون بعد توضیحات مفصلی رو بعد ارز خواهی کرد چون سکونی این هم یکی ای اجاز نیست که باز ما نمیدونی سکونی در کتب احل سنت تاریخ وفاتش 180ه یعنی زمان 900 جرفت اواخر حیات 900 جرفت این 180 تا سال 18, یکی از مزیده هاش در حدیث ما دقت بکنید در حدیث ما یه مقدار از بزرگان ما که منقه حدیث بودن تنقیه حدیث کردن و لهم شعنون در تصیح و توصیح و نشر حدیث در این طبقه هستن از بزرگان ما هستن که این خیلی نفس دارن یکی ایش نریو آمه یکی ایش نردارمان یکی ایش ها از هم سفوانه اینا اجلای اصحاب ما هستن که در این طبقه، هست. در این طبقه 380 اینا هیچ کلمه‌ای از تکونین نغ نگردن، خوب دقت کنید. شیخ از این بزرگان ما که اصطلاح ما ابتدای انتقال حدیث ما از کوفه به بغداد، مکتب اول بغداد، راست مکتب اول بغداد از سال 350 شروع میشه به برد. این مکتب اول بغداد یکی از امتیازاتش اینه که بزرگان اعمه شعن حدیث ما در این پسه هستم یک حدیث چناس هم تندن نمیرن خیلی اقلی سرس نیستن روایات تحرف بکنن روایات رو خیلی قشنگ انتخاب بکنن خیلی معقولانه شواهد حدیثش خیلی نقیه حدیثشون بسیار خوبیه انصافا احادیث این ها منتازه اولین بار ارز کردن من کرارن از سالهای 80. 70 تا 80 حدیث شیعه شروع میشه تا 50 550 در کوفه. از 150 معظم حدیث میاد برداد و در این مکتب بغداد خوب پالایش میشه. پالایش خیلی خوبیه. نه هر حدیث ضعيفي رو قبول میکنن، نه هر حدیثی رو میان طرد میکنن اصول اقلانی رو میارن، میگن با عقل جور در نمیاد. خیلی مکتب معتدلیه. یک مکتب معقول، منقول معتدل، هم معقولش معتدل معتدله، هم منقولش معتدله. و هم فوق العاده نقیقه. مکتب بغداد از سال هم مکتب قم فرو میشه. مکتب قم یه مقدار تسامح داره. در وقت هر آن توضیح میدم، برطرف تو این هم میخوام بعد توضیح بدم. اما این مکتب اول بغداد خیلی مکتب نقیه مثلا بزرگانی مثل ابن حیامه، اینا همین طبقه هستن. تو این طبقه، جزء بزرگان ما، تنها شخصی است که خیلی فوق العاده و قزنه و نسبتاً عدد معتنابهی از حدیث سکونی نرکده منحصه و عبدالله نموقیده است. مقدمات این مقدمات که کسند مثل ابن عبی عامی رو صحبان رو یونس و این بزرگان که واقعا هم پوکرادن هشان حکم رو این شان سالم اینا هیچ از, از سکونی نقل نکن این کلگان هستان نقل اما توی بزرگان ما که انصافا جل و از این رو و اضافه بر او اهل کوفه و چون بعد توضیح خواهم داد این آقاینا ما ترجیح نکنه اصلا کتاب سکونی در کوفه و بعد در بغداد شهرت پیدا نمیکنه. این اینو اصلا ترجیح به این نفر. کتاب سکونی توسط ابراهیم و میاد تو قم و تو قم مشهور میشه بعد هم که میره بغداد همون نسخه قومیس میره بغداد تواصل شیخ توسی دیگه نرده میشه دقیق بکنید این خیلی نکته زریفیه لكن در کوفه یکی از بزرگان کوفه که در این حال اهل کوفه از بزرگان و نسبتا زیاد ازش نعل کرده هم عبدالله بن مخيره بود بعضی عبدالله بن مخيره یعنی که از نقاط فوق العاده مصبر در روایات سکونی عبدکیشنش اول اومده و اون کاری کرده اما مجموعه ها جنوری نکاتی که به در نظرش نبوده اما نقطه نقطه ظریفیه مهمترین نقطه مصبر در روالیات سکونی و کتاب سکونی عبدالله نمخیر است. اون شد شد لیکن مشکل عبدالله نمخیر حالشون نمیخوام وارد بشن یکی از اجایب کار عبدالله نمخیر با این جلالت شنش خودش اصورا سقیه شازیه این همه مشکل دیگه ایشون این ما مفصل اثبات کردیم که ایشون سقیه شازیه اینم هم یکی از درزهای ولذا مرحوم نجاشی میگه مثلا کتب فراوانی ایشان داشته و مثلاً و, و, و یه هم این کتبی الان دسته کتاب این یو عرف ناشی کتاب های ایشان ترد شده حتی بعضی از اصحاب برداشتم نمیشن که چرا شیخ کتب ایشان در فهرست نام نبرده با در رجال گفته در اون کتب این او توجه نکرده چون کتب ایشان شاز بوده تدریزن از اجازات حرد شده حتی شیخ هم نهانوید خیلی عج با این جلالت شهر عبداللوی نبگیره البته رواتب 16 داره حالا من نمیخوام وارد اون بحث عبدالله بحث عبداللوی بحث طولانی است با جوزادارون مطرح بشیم فقط نقطه مثبت بحث ایشون که ما فقی باب فلانات ترجیح باب فلان و باب بیانات این نیست که چهار پنج تا اسم بردن خیلی بیشتره مناظره هر چند اشیلا ما در مجموعه رواتب سخونی منشون آمارگیری دقیق ندارم بین هفتاد و پنج درسته تا هشتر درسته نوفرین میکنه بین هفت هشت تا ده درسته, درسته عبدالله مقیره عبدالله مقیره نسبتا به بقیه خیلی نهار میکنه و از که مشکل عبدالله به نظر ما ما هم دقیقا برای الان واضح نیست کتاب ایشون بین اصحاب ما مهدیور میشه حالا چا با همین شدوز فکری شده اگر سکونی سنی نهار و فضالت اپنی ایو فضال جزو جزا بزرگانه در رسفه عبدالله مغیره نیست اما جایی و قدره چون اصحابه اجماع زک شده و لاکه ایشون تحمل نکرده اون چه که ما از فضالت داریم قطعاً روایت سکنیست این دیگه در شبههی نداریم من. چون مجموعه روایتی که ما از فضالت داریم چاف یا پنجتار در حدی نیست که کتاب باشیم قطعاً نیست. و کردیم از عسكرین خزاله خزالات عیوب یزدی از از اشعار معروف یمنیه، ها معروف هستند و ایشون اواخر عمرش احواز میاد. دو تا از بزرگان ما که در احواز بودن حسین سعید و مرحوم علی بن محزیار از یه ی حدیث‌نامه‌ها، حالا یا حسن مصید یا حسین مصید و علی بن محزیار. مثلا ما اگر روایت صفوی در این کتاب اربعه‌ای که من دیدم، یه روایت دیدیم که تواصل از خزاله اومده تو حسین مصید. می‌بینید؟ خوب دقت کنید. یک خواستم به مطلبی رو بعد بگم حالا اشاره میکنم آقایم بخواد نگاه کنم این نهره کار نشده ما آمدیم گفتیم سکونی یه طبقه بعدیش طبقه بعدیش عبدالله نموگیده خیلی مزرگ بار مثلا یونوس نیست فرس مثلا جناب آقای ابن عبی عمر نیست فرس اون جناب آقای سخوان اینا نیستن باز میاد طبقه بعدی بعد از اینها طبقه بعد از اینها انسال مثلا حسین ح باست تو کتب حسین سعیل ما راست سکونی نمیدیم یه روایه در کتب حسین سعیل کنم از فضاله است من را نیست از کتابش باشه اصلا بعضی راست فضاله حالت کتابی نداره میگه قال قلطر عبی عبدالله فقال نی کذا چون رواست کتاب سکونی ارز کردم یک سند واحد داره سکونی، ان جعفر، ان عبی، ان آبایی، ان علیه تا اینجا مشترکه تو بعضی هاش بوده قال، تو بعضی هاش بوده قال ق اونی که یه قاله داره این قال علیون که دو تا قاله داره این قال علیون قال رسول الله کتاب سکونی سندش یک نواخته گعفر وقت از رواد سکونی هست که این سند این همون رواد معروف هست که سکونی گفت که دخته برم به دنیا آمد از ساده برم چی اسمشان, اسمشان فاطمه دیگه برم خونده؟ این معلومه جزا کتاب سکونی باشه احتمال جزا رواد شفعیه ایشون باشه خبت میکنه این مطلب که دختری به دنیا اومده اسمشه این گذشته هم این اصلا منظور که کتاب اون سندی که اثر قلم بزنه پس حالا باید دقت بفرمایید مثلا الان فضائل و خیلی کم خیلی هم جز اصحاب اجماع بعد دیگه در کدوم باب و باب ادعواب اسمونه اسم الله بن بکری هم, هم اونم خیلی کم راست ایشون هم هست میشه جمیل بن دراز هم دو تا سه تا داره بعد ایشو یه من اصحاب اجماع ما انشاالله این ما قبول نده. بعد افراد دیگری که هستند یکی عباس معروفه حالا عباس معروف مستقیم نه ممکن محل تامل یکی هارون بن بعد نیست اما در اون ای که بخوایم یکی محمد بن ایسا ما دو تا محمد بن ایسا داریم که نقل میکنن حالا اینشالا بعد اینا توضیح بعد از میکنم یکی بکیت با کرد یکی سلیمان ابن جعفر جعفری از به تحبیل ایشان این از کلم اینا دو تا سه تاره باید دارن و وثاقت اینها نمیتونه در اون حدی نیست که با حاضرهایان پیدا بکنه به خود سکن خیل <تصفح> یا خودی <تصفح> ما تقدمه یعنی دلیل هشتم ایشان ما تقدمه من الفرد من الهب بکن استرداللذی پیه سکونی موسطقه ماله فخر المحققی المرادش این همی که به در تا دلیل نهوم ما زکرناه خلال حال جعفریاد تلقاید ستانیه من امن کسیرن من متون موجود موجوده تلکتب الاربعه به طرق المشایق علم نوفالیه یکی از عدله که ایتون کتاب جعفریات خیلی متون شبیه به روایت سکونیه این مقدر رو چون مستقی ما مستقیمن در سابقا بلکه ما این شاهد قرار داریم که اصلا جعفریات همون سکونیه این رو ما مفسلا شد در سرحان جعفریات از کتاب جعفریات کتابی بوده که اسماعیل پسر امام موسطن جعفر گرده به مصر بگم عجیبه تا مادانشون تو مدینه بوده مرگ بزرگی هم بوده مدینه بوده این رو نه از که اصلا نفر اصلا نفر از امام صادق نه. وقت مریم حاجی نوریزی این روایت با تکونی متابره. درسته؟ چی نتیجه گرفت؟ حالا ما چی نتیجه گرفتیم؟ با دلیل دیا تکونی خودش خودش داشت کرده. ایشون این نتیجه رو گرسته که وقتی امام صادق داشتن حدیث تکونی میگفتن، موسی بن جعفر اونجا حاضر بوده. ایشون نتیجه حدیث لویی بده. چون می‌دونه که تکونی از امام صادق موسى جعفر عبی نتیجه ایشان اینه که بله و, و انهو کانه انهو یعنی کان کان موسى جعفر یعنی ان جعفر, جعفر, جعفر کان حاضرن بله فی المجلس الذي ابو عبدالله سنت جدهی جده الی براهین کان حاضر علاوه بره عليه علیه السلام و شاید خود نتیجه ایشان ایشان این نتیجه گیر کردن که روایت سکونی در حقیقت تفریدی در مجلسی بوده که امام کادر هم تشریف داشتن امام صادق این احادیثی که نهرو برای امام موسی بن جعفر سلام سکونی هم در اونجا بوده این هم دلیل نهم دلیل دهم ده به هشتم میشه نهم دلیل دهم ده و من هو یظهر الاخیر معنا بله. و من هو هر چیز ان من کشف بسل عامیتی بس و وسو بروازی برنامه انجعت فی غیر محله بله ایشون می‌خواد بگه که این بحث رو ما خوندیم تو تو که چون گفته انجعبه پس ایشون سنیه نه بله ایشون می‌خواد بگه نه سنی بودنشم روشن نیست بله ولی این دو حدیث اورده نقل کردیم در کتاب مرحوم آیت السری که ایده از روایاتش رو ذکر کرده که اصلا ساکونی جز ظاهر سنت نبوده نه میکره قبل و قبل کنید نه نه خب تمام شدید کدام شد فردایی فردا یه مقداری چون از اولمی اسفان و بحثه رجالی حتی مثل مرموم میردامات که در روز اسفان بودن در مرموم خاجویی از مرموم الوید کلباسی کارای خوبی را که بعد از افحاظ رجالی شده یه از کلمات و اونا رو سمجاز میکنیم که بعد وارد بحث بشیم. آخرین کلمات هم از اونا می کنیم الله تعالی.